بسم الله الرحمن الرحيم رسيدين به المنقوص والمقصور والممدود تعريفها وأحكامها عند إفرادها تعريف وأحكام منقوص مقصور ممدود الأمثلة عدل القاضي عدل القاضي جاء دأخذ قروه آلف نزلت الوادي نظرت إلى الراعي ببنئت در عبلي عدل القاضي قاضي فائل هس بعد الوادي هم فائل هست اگر بعد بقيم نزلت الوادي اه نزلت هست نزلت الوادي يا نزلت الوادي ها نظر تو الى الراعی ببینید در حالت رفت قاضی فائل بود ببینید زمه مقدر شده بود زمه چی شده بود؟ در مثال بعدی مفعول بود فتح ظاهر شد در مثال سومی مجرور بود کسره مقدر بود و ظاهر نشد یعنی اونجا زمه تقدیری بود و اینجا کسره پس اسم منقوس مقصور چی منقوس؟ اسم منقوس در حالت نصب فتحش ظاهری ولی در حالت رفع و جر هست؟ تقدیری است مثال بعدی اینجا با الف لام اینجا با چی بودند اما در مثال بعدی در سه مثال بعدی دقت کنید که اسم منقوص الف لام نداره نادا منادن نادا منادن اینجا اگر دقیق داشته باشید در از حس منادیون آه؟ ولی کون الفلام نداره در, در صرف این بحث میشه زمه میاد بریات سنگینی میکنه زمه حس میشه بعدش به التقاء ساکرین یا همچی میشه حس میشه میشه مناده پس مناده فاعل هست نصحت و باقیانه باقیان مفهول بهیست منصوب هست با فتحه ظاهری اصغیتو الى داعن پس زمانی که اسم منقوص الفلام نداشته باشه در دو حالته زمانی که الفلام نداشته باشه زمانی که الفلام داشته باشه در سمه سال اولی القاضی الوادی الرایی توضیح دادیم زمانی که حاله الفلام نداشته باشه در حالت رفع و جر لام الفیلش حذف میشه و همیشه به شکل کسره تنوین روشی است چه در... بله خودش در قواعد میگه که لفظن و خطن یا چون منقوس که آخرین حرفش دیگه یاه بلده. یا حس میشه یا چی میشه؟ هم خطن و هم لفظن پس اینا بودن توضیحاتی در رابطه با اسم منقوس زمانی که الف داشته باشه چه حالتی میگیره و زمانی که الف لام داشته نباشه نداشته باشه امثله گروه با جاد الحیا حیا اسم منقوص مقصور هست در حالت رفع میبینیم که زمه نمیتونه روی الف ظاهر بشه تقدیری هست افترش و سرا اینجا هم الف فتحه نمیتونه ظاهر بشه نظرتو الى سنا پس فرقی که بین منقوس و مقصور هست در منقوص در حالت نصب فتح ظاهری بود ولی در مقصور چه رفت چه نصب چه جر در هر سه حالت چه هست زمانی که الفلام داره تقدیری هست فتحه اما است مثالی که الفلام ندارند یعنی زمانی که اسم مقصور الفلام نداشته باشه جا فتن تو ملهن ابتکعتو الى عسل در حالت راف نسب جرف یه حالت داره در حالت راف و جرف تقدیری هست که بعداً توضیح میده به چه شکلی هست اما ممدود اما اسمی؟ ممجود جا الانشاؤ جا دل انشاؤ احترمت القراءه قروبت الصحراء طارت الورقاء باال الكساء تم البناء القوائد به قوائد برگردید همه چیزو جداگانی چه چی اسمی اسم مقصورن ما قبلها منقوس تعریف میکنه میگه هر اسم موربی که آخرش یا یا هست آخرش چه هست بله آخرش یا هست همیشه و مقصورن ما قبلها یایی که ما قبلش هم چه داره پس اسم ما ما منقوس اسمی هست که آخرش یا هست و ما قبلش هم همیشه چه مقصور هست سدو چل هست المقصور كل اسم معربین آخرهو الیف لازمه مقصور هم اسم معربی هست که آخرش الیف لازمه هست آخرش میشه چه هست؟ الیف هست الممدودو مثل عصا دنیا آخرش چه هست؟ الیف هست الممدودو كل اسم معربین آخرهو حمزتون قبلها الیف زائده دقیق کنید؟ ممدود هر اسم مغربی است که آخرین حرفش حمزه هست. آخرین حرفش هست؟ ولی قبل از حمزه علف زایده است. مانند انشاء، قراء، صحراء، ورقاء، کساء، بنا. آخرین حرفش حمزه هست و ما قبل حمزه هست؟ الف زائد. پس؟ اومد منقوس مقصور و ممدود رو تعریف کرد الان دیگه رو توضیح میده دقت کنید 149 هم اعراب توضیح میده اذا نوون المنقوس زمانی که اسم منقوسی تنوین داده بشه و زمانی که الفلام دا... نداشته باشه و چی داشته باشه بله زمانی که تنوین داشته باشه اذا نوین المنقوسو زمانی که تنوین داده شود منقوس حضیفت یا او لفظن و خطن في الرفع والجر یاش اش و خطن در حالت رفع جر حس میشه مانند نادا منادن اصغیتو الاداین در اسم بودن منادیون و دائین در اصل ولی يا چی شده؟ در حالت رف و جر زمانی که الفلام نداشته باشه زمانی که تنوین داشته باشه چی میشه ؟ حسب میشه و بقیت علا نسب و یا باقی میماند در حالت نسب مانند نصحت باقیان یارو ببینید که باقی مانده؟ بله اما قائده سد و کتابتون اذا نوون المقصور زمانی که مقصور تنوین داده دا شود امثلی گروه با جا الحیا افترشتو الثراء نظرت الى السنا اذا نوون المقصور زمانی که همین مقصورو بیایم تنوین بهیم مانند فتن ملحن آسانه حضفت علیفه لفظا و ختن علیفش حست میشه چی؟ حذفت الفه خ لفظانه الفش در لفظ اه در, اه حض اخض. حض اخض. حض اخض در لفظ بله الفش در لفظ میشه دیگه نمیگیم فتا میگیم فتن. میگیم چی پس در نوشتن حذف نمیشه وقتی در تلفظ کردن چی میشه حذف میشه اذا نوین بن زمانی که تنوین داده شود مقصور خودِ پات الفه لاخذان الفش لاخذان حذف میشه مانند فتن ملحن قسن دیگه نمیگیم فتا ملها عسا الف چی میشه حذف میشه ولی در نوشتار حذف نشده تنون رو الفه خب لاخطن خطن, خطن حذف نمیشه در نوشتار حذف نمیشه فر رفع والجر در رفع و نصب و جر در هر سه حالت رفع نصب و جر تن اکس س ایر داره رفع و نصب مانند جا فتن دخل تملهن اتكأت على عصن. ثمرهم امرسنا سكين. ثنيديا میمونن اما خطه. لفظه علفش خوانده نمیشه ولی در نوشتر وجود داره. خب اینجا یک نقطه دقت بفرمایید. مال ممدود رو آورده بود چرا؟ به خاطر که ممدود داستانش جدا هست ممدود مثل اون دوتا نیست چه الفلام داشته باشه چه نداشته باشه میگیم احترم تو القراء اگر الفلامش تازه برداسته میشه احترم تو قراء قراء هنه دیگه بله چه چی گفتید؟ مستر رفت مثال رو هنر خونده. آلش خوبیه تو لازمی ماندودم. بله. کل نخوندی. ات ذکأتو علی اسن. ببین. در خونده خونده نمیشه. لفظان منظور در خونده، در خونده، موقعی می‌خونیش تو علف بیش می‌دی عسن کجای علف؟ ولی در نوشتار عس علف داره. لفظا یعنی اینکه زمان که تلفظش می‌کنی برادرانه در... بله لفظا منظور در خواندن خطا یعنی در نوشتار خب بیایید درس بعدی باز هم در همین رابطه هست ولی حالت مسنا و رو توضیح می‌ده